بسیغه زوری جون ای قصه گو محمد رضا سرشار سالها پیش و در روزگاران قدیم جوونی بعد از سالها دوری از شهر و ولایت خودش آزم سفر شد برای چی برای دیدن پدر و مادر پیر و دوستان و آشنایان و خویشاوندانش جوون روزها و روزها یکی بعد از دیگری راه سپرد تا اینکه گرفتار سوز و سرما شد آخه جوون تو فصل زمستون دل به سفر سپرده بود باری او به خودش که اومد دید ای دل غافل سوز و سرما از زمین و زمان میباره و اون در بیابون برهوتی گرفتاره در این گیرودار برفم شروع به باریدن کرد و چادر زخیم سفیدی جلوی چشمان مسافر ما رو گرفت جوان با دیدن این حال و اوزا در دل گفت به هر حال چاره نیست هرطور طور که شده من باید به راه خودم ادامه بدم چون اگه دیر بجنبم و به جایی نرسم حتما تو این سرما یخ میزنه. القصه جوون تو اون سوز و سرما به راه خودش ادامه داد در حالی که دیگه چیزی نمونده بود از پا در بیاد اون بنده خدا همینطور که به راه خودش ادامه میداد یه دفعه نوری رو دید که تو اون بیابون روشن شد با دیدن نور فهمید که شب هم از راه رسیده و خورشید عالمتاب در چاه مغرب فرو رفته اون در حال که از دیدن اون نور جون تازهی گرفته بود به اون طرف قدم برداشت مدتی که رفت یه دفعه روبروی خودش یه آسیاب دید ساختمون آسیاب تو اون بیابون برهود برای مسافر در راه مونده مثل یک قصر بهشتی بود اون با مشت به در کوبید و التماس کنان از هر کس تو آسیاب بود خواست تا در رو به روش باز کنه هنوزم مدت زیادی از این وزن نگذشته بود که در باز شد و صدایی به گوشش خورد. بیا تو جوان. زود که هوا خیلی سرده. جوان معطلی از جا کنده شد و خودش رو انداخت داخل ساختمون آسیا. مدتی بیهوش افتاده بود که یه دفعه با حرارت دلچسبی از خواب بیدار شد. بله، آسیاون آسیابون آتیشی برای جوون روشن کرده بود تا اون گرمش بشه و جونی بگیره آسیابون با به حال اومدن جوون ازش پرسید خب مرد چطور شد که تو این سوز و سرما دل به سفر سپردی؟ چرا به همین راحتی آرامش و قرار رو از خودت سلب کردی؟ جوون گفت سالها بود که من این طرفا نیومده بودم تازه سرما هم زودرس بود راسش من چند ساله که پدر و مادر خودم رو ندیدم. قصدم اینه که اونها رو ببینم و بعد از اینکه دیداری تازه شد پولیم بهشون بدم و دوباره به کار و پیشه خودم برگردم. آسیابون با شنیدن این حرفها سری سریع تکون داد و گفت خوب پس به زحمتش میارزه. مخصوصا که قصد داری به پدر و مادرت هم کمک کنی و دست و بال اونها رو بگیری. حالا هم خوبه بدونی که از این آسیاب تا شهر راه زیادی نیست. اگه امشب رو به سلامت اینجا سر کنی، فردا دیگه حتما آسمون هم قرار میگیره و میتونی به سفر خود ادامه بدی. جوون، این حرفها رو که از آسیابون شنید در حق او دعا کرد و گفت امیدوارم بتونم یه جوری این محبت تو رو جبران کنم. چون اگه پام به این آسیاب نمیرسید معلوم نبود تا یکی دو روز دیگه چه بلایی سرم میومد. آسیابون سری تکون داد و در حالی که وانمود میکرد کاری انجام نداده که اون مسافر اینقدر قدر ازش قدردانی میکنه مشغول آماده کردن غذا شد. جوان نمازش رو خوند و غذا رو هم خورد و از اونجایی که خیلی خسته بود گوشه ای دراز کشید و خیلی زودم خوابش برد. صبح فردا خوشحال و سرحال از خواب بیدار شد و رفت و در رو باز کرد و نگاهی به بیرون انداخت. آوا صاف بود و دیگه از بارش برف خبری نبود. جوان چند قرص نون خورد و نمازی خوند و با روبونه مختصر خودش را برداشت و آماده ی رفتن شد. از آسیابون به خاطر زحماتی که بهش داده بود تشکر کرد و دست پرشالش برد تا چند سکه به اون بده که یه دفعه انگار دنیا رو بر سرش خراب کرده. بله از هزار سکه که همراه خودش داشت خبری نبود که نبود پریشان حال و بیقرار تو آسیاب مشغول وارسی و جستجو شد آسیابون پرسید چی شده جوون؟ جوان؟ چی میگردی؟ بگو تا کمکت کنم گفت از کیسه پولم خبری نیست انگار آب شده و تو زمین فرو رفته آسیابون گفت شاید تو راه کیسه پولتو گم کردی آخه تو راه زیادی رو پیاده اومدی جوون گفت من وارد این آسیاب که شدم پولم امرام بود حتی دست پرش شالم زدم و از بودن کیسه پول خوشحال شدم ولی نمیدونم بعد از اون چه بلایی سر کیسه پولم اومده آسیابون باشنیدن این حرف جوون اخب کرد و پرسید یعنی میخوای بگی که کیسه پول تو رو من ورداشتم جوون گفت کی همچین حرفی زده؟ من گفتم که پول همرام بود حالا شاید وقتی من پا توی آسیاب گذاشتم خسته و کوفته بودم و حواسم پرت بوده و کیسه رو جایی انداختم شاید اگه این گوشه و کناره رو وارسی کنم بتونم کیسه پولم رو پیدا کنم آسیابون تا این حرف رو از جوون شنید یقیه او رو چنگ زد و گفت ای گستاخ نمک نشت ناس؟ و این حرفت نشون دادی که ارزشی برای محبتی که در حقت کردم قائل نیستی حالا زود باش از اینجا بیرون برو که بیشتر از این تحمل دیدن رو تو ندارم زود باش برو بیرون که اگه پا روی دومن بذاری هرچی دیدی از چشم خودت دیدی جامون گفت ولی من میخواستم از خجالت تو در بیام که آسیابون فریاد زد من مزدمو و گرفتم حالا زود باش از اینجا برو بیرون جوان مسافر که از این برخورد آسیابون حسابی گیت شده بود از اونجا بیرون اومد و دلشکسته و نگران به طرف شهر غریب براه افتاد. بله عزیزان مسافر قصه ما در راه رسیدن به شهر حسابی فکر کرد و بالاخره فهمید که همه اون عداب و اون آسیابون روی حساب بوده و با این نقشه دار و ندارش رو تصاحب کرده این بود که تصمیم گرفت به محکمه قاضی شهر بره و از دست اون آسیابون شکایت کنه بعدم به محکمه رفت و سفره دلش رو پیش قاضی باز کرد قاضی بعد از اون که خوب به حرف های جوان گوش کرد پرسید خب بگو بدونم تو شاهدی هم داری که با یک کیسه پول وارد آسیاب شدی جوان گفت چه ش... شاهدی جناب قاضی من اصلا تو این شهر غریبه قاضی گفت خب من چطور میتونم فقط با ادعای تو یه نفرو متهم به دزدی کنم پس بهتر صبر کنی و دلیلی برای این حرف خودت پیدا کنی بله به این ترتیب در محکمه قاضی هم سر جوون به سنگ خورد این بود که از اونجا بیرون رفت در حالی که اون ولایت غریب چه کار بکنه و کجا بره بله عزیزان از اونجایی که در حال حاضر با جوون کاری نداریم بهتر سری به اون آسیاب بزنیم و ببینیم اونجا چه خبره بعد از رفتن جوون، آسیابون کیسه پول اون بند خدا رو خالی کرد و مشغول تماشای درهم و دیناری شد که تو اون کیسه بود اون اونقدر از به آوردن اون پول خوشحال بود که تا شب بارها و بارها اون زر و سیم رو شمرد و برای خرج کردنشون نقشه ها کشید خلاصه اون روز خدا هم به شب رسید و زمین و زمان در سکوت و خاموشی فرو رفت هنوز مدت زیادی از شب نگذشته بود که یه نفر در زد آسیابون با شنیدن این صدا بی اختیار از جا پرید و رفت و خنجری برداشت و به طرف در رفت آخه فکر میکرد اون جوون غریب برای پس گرفتن پولش برگشته این رو که خنجر رو پشتش پنهون کرد و یواش یواش به طرف در رفت بیرون برف میبارید و باد زوزه میکشید آسیابون با دو دلی در چوبی را باز کرد که یه دفعه در چار چوب در مرد جولیده ای با رنگ و روی پریده در حالی که برف بر سر و روش نشسته بود ظاهر شد مرد اون که منتظر تعارف آسیابون باشه وارد شد و زود در را پشت سر خودش بست آسیابون که از این برخورد و این رفتار و کردار مرد غریب تعجب کرده بود پرسید چی شده مرد تو کی هستی و اینجا چیکار میکنی؟ طوری وارد شدی که خیال کردم از دست گرگ فرار کردی مرد غریب کیسه ای رو که بر داشت زمین گذاشت و گفت مگه گرگی بدتر از این سوز و سرمام پیدا میشه؟ غم غربت کم بود گرفتار سوز و سرمام شدیم من امشب مهمون تو هستم فردا که خواستم برم از خجرت در میان آسیابون با شنیدن این حرف لبخندی زد و گفت یه شب یه چیزی نیست تو اگه بخوایی میتونی تا یک سالم اینجا بمونی مرد جوریده گفت حالا چیزی هست که من بخورم چون از گرسنگی دارم از پا در میام آسیابون غذایی برای مرد پریشان حال آورد و او هم با حرص و ولع مشغول خوردن شد و وقتی سیر شد رو به آسیابون کرد و گفت حالا جایی هم پن کن تا بخوابم آسیابون با مهربونی رخت خواب گرم و نرمی برای مرد غریب آماده کرد و او از کنار سفره غذا که بلند شد خودش رو روی تشک انداخت و خیلی زود صدا و خور رو پفش بلند شد. که انگار صد سال بود نخوابیده بود. با بخواب رفتن مرد غریب آسیابون پاورچین پاورچین به طرف کیسه او که در گوشه افتاده بود رفت. کیسه رو لمس کرد و از چیزهایی که توی اون دید احساس شادی و رضایت کرد بله بعدم کیسه مرد غریب و چیزهایی که توی اون بود آسیابون رو وسوسه کرد اون مدتی با خودش کلنجار رفت و بالاخره کیسه رو از روی زمین برداشت و در حالی که مواظب بود مرد غریب از خواب بیدار نشه مشغول باز کردن سر کیسه شد صبح که شد مرد غریب با چشمای پفالود و سروز هم ریخته رو به آسیابون کرد و گفت دیگه من باید راهی بشم چون خیلی گرفتارم آسیابون گفت حالا چه عجله ای داری؟ دو سه روزی پیش ما باش قول میدم نظرم به بد بگذره مرد غریب خنده یه کرد و گفت اتفاقا دیشب رو خیلی راحت به صبح رسوندم حالا بگو چقدر باید بهت بدم آسیابون گفت من به خاطر پول در رو به روی تو باز نکردم وگرنه همون دیشب که پاتو اینجا گذاشتی باهات ته می کردم که چقدر ازت می گیرم پس حالا هرچی دوست داری بده مرد غریب دست کرد و کیسه کوچیکی در آورد و از تو کیسه چند سکه برداشت و به آسیابون داد و گفت بیا اینم مزد یک شب مهمون داری. و بعد از این حرف کیسهش را رو از روی زمین برداشت اما تا خواست راه بیفته کیسه رو چند بار دست دست کرد و گفت مثل اینکه این کیسه سبک شده. این رو گفت و در کیسه رو باز کرد و بعد از اینکه چند بار چیزهایی رو که توی اون بود وارسی کرد نگاهی به آسیابون انداخت و گفت یک کاسه زرین تو این کیسه بود. اما حالا ازش خبری نیست؟ تو نمیدونی اون کاسه کجاست؟ مرد آسیابون خودش را به بیخبری زد و گفت از کجا بدونه؟ این همون کیسه یه که تو دیشب با خودت آوردی؟ مرد جلو رفت و سر آسیابون داد کشید و گفت زود باش کاسه زرین رو با من بده وگرنه هر چی دیدی از چشم خودت دیدی آسیابون با دست در رو نشون داد و گفت زود باش رو بیرون کاش در و برود باز نکرده بودم و تو اون سوز و سرما یخ زده بودی مرد که کل و قد و قباره بزرگتری از آسیابون داشت او رو از روی زمین بلند کرد و گفت زود باش کاسه زرینا با به من بده وگرنه بلایی سرت میارم که تو قصه ها بنویسن آسیابون گفت زود باش از اینجا برو وگرنه ازت شکایت میکنم این پاداش اون همه مهر و حبت من؟ برد غریب گفت تو خوب بدونی که من یه دزدم هر که تو این کیسه بود دزدی بود دیشب که از این طرف ها سر در آوردم به خاطر این بود که از چنگ مامورای حکومتی فرار کردم حالا که فهمیدی من کی هستم زود باش کاسه زرین رو به من بده آسیابون گفت پس تو دزدی که عمرو به چشم دزد می‌بینی وارد خونه من شدی از سوز و سرما و چنگ گرگا در امون موندی اون وقت به من تهمت دزدی هم میزنی؟ راهزن گفت من اگه دزدم ولی خیانتکار نیستم من دزدم ولی تو در امانت خیانت میکنی خودتو به شکل و شمایل آسیابونا درآوردی تا کیسه مردم بیچاری رو که در راه موندن خالی کنی برای که هر دو هم دیگه رو شناختیم، بیا و مردونگی کن و بگو که خودتون کاسه رو برداشتی منم ازش میگذرم آسیابون لبخندی زد و گفت تا اون وقت بگی که من چیزهای دیگه هم از تو کیست برداشتم آره؟ برای همینم من دوست ندارم که بگم اون کاسه زرین رو برداشتم مرد پریشونحال گفت یادت راحت باشه که من اگه بدونم که تو کاسه ذرین و برداشتی از خیرش میگذرم. و اگر نه من میدونم و قاضی شهر. آسیابون گفت دنیا رو ببین. یه دوز میخواد از من شکایت کنه. میتونی اینجا رو زیر رو کنی. بالاخره آب که نشده تو زمین بره. راهزن گفت باشه. اما یادت باشه که تو خودت خواستی که اینطور بشه. من که میدونم تو اون کاسه زرین و دم دست پنهون نکردی ولی کاری میکنم که آرزوی مرگ کنی و مرگم به فریادت نرسه اون این حرف رو زد و کیسهش رو دوش کشید و از اونجا رفت در حالی که آسیابون از خوشحالی و به خاطر کاسه زرین در پوست نمی گنجید حرامی راه شهر رو در پیش گرفت و وقتی به اونجا رسید یه راست به داروغ خونه رفت گزمه ها با دیدن دزد انگشت حیرت به دندون گزیدن که چطور شده دزدی با پای خودش اومده و تسلیم شده بعدم برای رسیدگی به کارهاش او رو به محکمه قاضی شهر بردن قاضی وقتی بر مسند قضاوت نشست با روی خوش با اون برخورد کرد و گفت خوش اومدهی؟ حالا بگو چطور شد که از این رو به اون رو شدی و قصد کردی راه صلاح و ثواب رو در پیش بگیری؟ راسن گفت من در حال حاضر آدم خوبی نیستم ولی آرزو دارم در آینده راه نیکی و پاکی رو تو زندگی در پیش بگیرم اما چیزی که باعث شد بیام و خودم رو معرفی کنم آدم ناپاکی بود که در لباس یک آسیابون به مردم غریب و آشنا تو این شهر دست برد میزنه قاضی از این موضوع تجب کرد و پرسید کدوم آسیابون؟ تو از کی داری حرف میزنی؟ اصلا اون آدم کجاست؟ که مرد گناهکار اون چرا که شما تا از زبان قصه گو شنیدید برای قاضی تعریف کرد قاضی تا این حرف را شنید سر در گریبان تفکر فرو برد و بعد به جارشی ها دستور داد هر چه زودتر جوونی رو که از آسیابون شکایت داشت خبر کنن تا به محکمه بیاد همین طورم هم شد به دستور قاضی آسیابون گرفتار نابکاری های خودش شد و اون راه زن چراق عقلش روشن شد و اون جوون هم به حقش رسید و حکایت اونها قصه ای شد که شما امروز شنیدید انشالله تا عمر دارید و تو این دنیای فانی زندگی می کنید جز راه صلاح و سبب در پیش نگیرید